برادران وارنر روی صندلی جلو نشستم و استارت زدم. همه این کاری که حالا باید می کردم این بود که دو سه ساعتی دور بزنم و وقت تلف کنم. تا ساعت یک نیمه شب وقت تحویل جسد در گورستان آسایش الهی. قبل از اینکه ماشین روشن شود، ماشین دیگری آن طرف خیابان نگهداشت و دو نفر از آن پیاده شدند. حسابی عصبانی به نظر می رسیدند. به نظرم آشنا آمدند. بعد شناختنشان، همون دو نفری بودند که یکی دو ساعت قبل جسد آن متعلق را از پزشکی قانونی دستیده بودند واقعا کفری بودند نفر سومی هم تو صندلی راننده جا خوش کرده بود آنها که پیاده شدند او براه افتاد آن دو نفر مثل هرفیی به سمت پزشکی قانونی گام برمی داشتند انگار که کاراکترهای یکی از فیلم های گنگستری برادران وارنرند وقت را هدر نمی‌دادند. یکشان خیلی بلند و تنومند بود. مثل یک ژامون پادار پاچوبی برای 250 دلارش حسابی باید زحمت میکشید با ماشین بر افتادم قطار سریو سیر بابل آریون. همانطور که داشتم با ماشین، با جنازه دختره که صحی و سالم تو صندوق عقب بود از خیابان کولومبوس رد می شدم، فکر کردم گنجاندن صحنهای در پزشکی قانونی در اسمید اسمید در جدال و سایه های روبوتی خیلی جالب خواهد بود. در رؤیا می دیدم که من و نعنادی داریم برای شناسایی یک جسد به پزشکی قانونی شهر بابل می رویم. شب بود و مه بابل را گرفته بود. و ما در خیابان منتهی به پزشکی قانونی قدم میزدیم یک چهار راه تا پزشکی قانونی مانده بود من گفتم تو مجبور نیستی این کارو بکنی یه خورده ناجوره یارو با قطار تصادف کرده چیز چندانی ازش بر شناسایی نمونده تو میتونی بیرون منتظرم بمونی نه گفت نه منم میخوام خوم باهات بیام دوست ندارم ازت دور باشم شاید کمکی از دستم خودت میدونی که من کشت مردتم تو مرد منی خنگ خدا اون آدم با سه تا قطار سری و سیر بابل اوریون هم تصادف کرده باشه برا مهم نیست نعنا واقعا دیوانه من بود گفتم خیلی خوب ولی یادت باشه که من بهت هشدار دادم نعنا گفت اصلا بگو با شیش تا قطار سری و سیر بابل اوریون تصادف کرده اچم دخت یک کارگاه خصوصی در بابل منشی بهتر از او نمیتوانست داشته باشد. قطرها در بلوان گندش بزند خداحافظ بابل در خیابان اتحاد دور زدم و به سمت پزشکی قانونی برگشتم هرچه کردم نتوانستم خودم رو راضی کنم پاچوبی قدیمیم را به حال خودش رها کنم تا اسباب تفریح تفریحان قل ها شود. جای پارک پاچوبی روبروی پزشکی قانونی هنوز خالی بود و همانجا پارک کردم سروبر را به دنبال ماشین و قلچماخات دید زدم اما خبری نبود. مثل سایه موزی در حال پوسکنده شدن از ماشین بیرون سریدم و به سرعت اما تقریبا بی سر و صدا وارد پزشکی قانونی شدم. دست توی جیب کتم بود و هفتی رو پرم رو لمس می کردم. آماده ورود به کارزار بودم و دلم می خواست یک جوری سر در بیاورم آن دو نفر با جسد دزدی از پزشکی قانونی چه گوهی می خواهن بخورن. میخواستم بفهمم چه اتفاقی دارد میافتد. این کاری است که قرار است کاراگاهان خصوصی بکنند و اگر من مجبور می شدم یک قدری خشونت به خرج بدهم مطابق ارف و روال معمول کاملا قابل اقماس بود. وسط راه را بودم و داشتم به سمت اتاق کارب شکافی کافی می میرفتم که صدای برخورد شدید و سپس صدای نالهی شنیدم. هرآساده ها داشتن دخل پاچوبی را میآوردند سزای این کارشان را میبینند. پشت در بسته با اسلحه توی دستم ایستاده و آماده بودم به پرم داخل و آنها را اساسی قافلگیر کنم. صدای نالهی دیگری به گوشم خورد و بعد هم صدای برخوردی دیگر چند ثانیه ای سکوت و بعد جیغی دلخراش. صدای جهنمی جواز ورود باشگوه من بود. خودم را انداختم توی اتاق کالباد شکافی و آنجا منظری تقریبا شبیه کارت دعوت عجیب در انتظارم بود. اول از همه پاچوبی پشت میزش نشسته و فنجان قهوهی توی دستش خون سرد و بیخیال مثل خیار لم داده بود. من که پریدم تو اتاق اصلا جا نخورد. مثل یک میزبان در حالی که به ماجراهای جاری اشاره داشت گفت به مهمونی خوش اومدی. جیغ جگر خراش دیگری بلند شد. بر خدا آه! آه! در گوشه اتاق کالبا شکافی لشه یکی از تبعکارها افتاده بود کامل از هوش رفته بود قیافش طوری بود که انگار به خواب زمستانی فرو رفته در یکی از محفظه های یخچال مرگ باز بود و گروهبان رینگ کنار آن ایستاده بود تبعکار دوم دست خورده روی کفی محفظه دراز کش شده بود. آن همه داد و فریاد کار او بود تا خرخره در یخچال مخصوص ها فرو شده بود و انگار اصلا عین خیالش نبود. همه ای چیزی که از او به چشم آمد صورتش بود که نشان میداد تا حد مرگ ترسیده. جیغ کشید. غرهبان رینک گفت: یه بار دیگه چه گوهی می می‌خواید بخوریم که اومدین لاشه مردهها رو بدستین و کارمندای پزشکی قانونی را که اتفاقا از دوستای منن لاتو پار کنین. تبهکار گفت. هرچی میخوای بهت میگم فقط منو اینجا کنار رو برده به نکته درستی اشاره میکرد. آنجا جای درپذیری برای اقامت نبود. من که هیچ دلم نمیخواست جای او باشم و سرما دخلم را بیاورد. گروهبان رینگ یک قدری بیرونش کشید و حالا میشد سگک کمربندش را هم دید. به تبهکار گفت. اینجوری بهتره؟ مردک قلچماک با نشان آسایش ناگهانی و شیرینی که در صورتش هویدا هو شد گفت: آره، ممنون. خب جونور، بریز بیرون. رینگ مشهور بود به اینکه پلیس بسیار خشه نیست و این شهرتی بود که او صد درصد در, در شأن آن عمل می کرد. من واقعاً ای جز تحسین او نداشتم. حیف که وقتی میخواستم همراه او به دانشکده نیروی انتظامی پا بگذارم، بابل بر من غلبه کرد. و صد راه هم شد، چه بس و من و او هم قطار می شدیم، تصورش برام خیلی لذت بخش بود، خب البته بابل هم برام خیلی لذت بخش بود، اوزایی یک خورده سخت بود، با این حال از این بابت که همیشه خدا در رؤیای بابل بودم اصلا نفسوس نمی خوردم، گروپان رینگ چنان هوش و حواسش به بازجویی از تبهکاره بود که به ورود ناگهانی و مسلحانه من واکنشی نشان نداده بود، شاید هم فهمیده بود که منم و در مورد من هم که نیازی به توجهات آنی نبود. اما حالا داشت به من نگاه می کرد. حواسش دیگر متوجه آن گوریلی نبود که موش شده بود. تبه کار در که منو عجیر کرده بودم که... رین گفت خفش و سوسکه کسیف. توجهش به من چلب شده بود. سوسکه کسیف خفه شد. درش نمیخواست شب را توی یخچال کنار آن چندتا جسد باقی مانده در پزشکی قانونی سپری کند که یک جوری از سرگت های آن شب به سر در رفته بودند. رینگ گفت سلام کارد تپانچه واسه چیه؟ و تو اینجا چه غلطی میکنی؟ گفتم اومده بودم پاچوبی رو ببینم و سر و صداها رو شنیدم. فهمیدم خبری شده چون اینجا جاییه که مرده ها رو نگهداری میکنن. جایی برای همین آماده شدم که وارد عمل بشم. قضیه چیه؟ خدا خدا می کردم که پاچوبی بند را آب نداده و نگفته باشد که من خودم از همان هایی هستم که یک جسد تر و تازه از اینجا کش رفته و خوش و خرم آن را توی صندوق عقب یک ماشین جا دادند. گروه گروهبان رینگ گفت: مورد مرده و اینجا گیر انداختیم. اونا دو جسد از پاچوبی دزدیدند و بعد برگشتند بازم به و این وسط پاچوبی رو هم می‌خواستن لطو پار کنن." آروم ها، داشتم یه درس کوچولو راجع به اینکه جنایت آخر عاقبت نداره بهشون میدادم همونطور بیخیال. قلچماقه را داخل یخچال هل داد آنقدر که فقط چشمهاش دیده میشد که به ما خیره مانده بود قلچماقه همونطور که داشت به داخل یخچال برمیگشت دوباره داد زد قربان رینگ کفیر را کامل فرستاد تو و بعدش هم در محفظه را بست و به قلچماقه گفت دیدی؟ جنایت آخر آقابد نداره؟ صدای خفه جیخ مردک از توی یخچال هنوز به گوش می رسید. رینگ رینگ رفت و برای خودش یک فنجان قهوه پزشکی قانونی ریخت. بعد گفت یه مدتی میذارمش همونجا بمونه. بذار تا پاشنه پاش یخ بزنه. کارم که با این حروم زده تموم شد دیگه نمیتونه بیاد جسد دستی. رینگ یک جور از قهفهش سر کشید حتی رود هرش نکرد از آن پالیس های خشن بود صدای خفه جیخ همانطور از توی یخچال می‌آمد. و جیغ و جیخ انگار برای پاچوبی یا رینگ اصلا ناراحت کننده نبود فکر کردم پس برای من هم نباید ناراحت کننده باشد امروز روز خوششانسی من فنجانی برداشتم و برای خوردن قهوه به پاچوبی و گروهبان رینک ملحق شدم و گلچماغه دراسکش روی کفی سردخانه شهر همچنان داشت جیغو داد میکرد پاچوبی گفت خصوصی پیش پای تو قبل از اینکه خودتو برسونی اینجا که بابتش خیلی هم ازت ممنونم مه گندش بزنه اگه گروهبان خودشون نرسونده بود اینجا اون وقت همه امیدم به تو بود. خلاصه قبل از اینا داشتم به گروهبان رینگ میگفتم که این دو نفر امروز دوتا جسد از من دزدیدن. من نمیدونم با اون دو تا جنازه چه گوهی میخواستم بخورم. میخواستم دوباره منو لا تو پارک کنن که گروهبا سر رسید. چه شانسی آوردم. امروز روز خوش منه. روز خوششانسی رو که به زبان می آورد مستقیما داشت به من نگاه می کرد. خیلی هم ازت ممنونم. چرا که نه؟ دو بیست و پنجاه دلار به جیب زدن خنده خرکی هم دارد. گروهبان رینک گفت بالاخره تو آتو شده میارم که این دو نفر واسه چی اون جسدا رو دزدیدن بذارین تو ما قهوه منو میخوریم دوستمون تو سرد کن بمونه بعدش آماده حرف زدن میشه و گمون نکنم بعد از این بازم بخواد جسد دزدی کنه ادب میشه آشغال حفظی جیقهاش همچنان از سرد کن به بیرون درز میکرد بند نمی صداش توری بود که انگار دیگر دارد عقلش را از دست میدهد. گروهبان رینک به پاچوبی گفت تو هیچی به ذهنت نمیرسه که اینا هدفشون از سرقت جسد و چی بوده ها پاچوبی گفت نه گمونم اونا فقط ادا مرددوز کسیفن بلالوگوسی به آشنایی با این علاقه افتخار میکنه رینک گفت جسد کیا رو بردن پاچوبی گفت دوتا زن یکی اون مطلقه که خودکشی کرده بود که مالی هم نبود و یکی اون فاحشه مختولی که خودت آورده بودی اینجا گروهبان رینگ گفت، آن؟ آره؟ زن خوشگلی بود، حیف شد، پس این که ها جسد اون رو دازدیدن، این ماجرا را یه خورده جالبتر میکنه. صدای جیخای طبع کار مرد دوست، همچنان از توی یخچال به گوش می رسید. رینگ گفت، گمونم دیگه آماده است، فکر نکنم دیگه واسه بیرون کشیدن حقیقت از زیر زبونش مشکلی داشته باشم. طبخ کار دیگر گوشه اتاق روی زمین همچنان در خواب زمستانیش بود واقعا از هوش رفته بود رینگ که بخواهد دخل کسی را بیاورد کارش حرف ندارد صدای آ آ آ همچنان از داخل یخچال میآمد آمد رینگ جرعی دیگری ره به زرگشی. تقریبا درست همان وقت طبعکار سوم هم سلانه سلانه در جستجوی رفقای جسد دزدش وارد اتاق کالباد شکافی شد آنچه به استقبالش آمد منظر یکی از رفقاش بود که در بیهوشی کامل یک گوشه افتاده بود و همینطور صدای خفه جیخ های هم پالکی دیگرش که از توی یخچال می آمد. صورت طبعکار مثل گچ سفید شد گفت اشتباهی اومدم، کلماتی که از دهنش درآمد خوشی که خوش بود، صداش طوری بود که انگار صحرای آفریقا دارد حرف می زند. گفت، معذرت می و با, با زحمت زیاد سر برگردند و با حالتی نامتعادل راهی حریم امن در شد که حتما به نظرش میلیون ها کیلومتر با او فاصله داشت، از یک تبهکار زنده نفسکش به یک تبهکار کاغذی تبدیل شده بود. گروهبان رینک گفت یه دیقه سب کنم شهری و در همان حال جرئهای قهوه سر کشید کدوم گوری داری میری طبهكار سرجاش میخکوب شده بود و جایی که آمده بود برای میخکوب شدن کاملا مناسب بود با صدای صحرای آفریقاییاش گفت اشتباهی اومدم گروهبان رینک خیلی آهسته سر تبهکاری که نمیدانست چه دارد میگوید چون از ترس و وحشت مخش از کار افتاده بود گفت منظورتون اینه که درست اومدم؟ گروهبان رینگ با سر تأیید کرد. بله درست آمده بود. گروهبان به صندلی اشاره کرد که آن طرف اتاق کنار لش تبه‌کاری بود که مثل خرس خوابیده بود. گفت بگیر بشین تاپاله. تاپاله خاص چیزی بگوید اما گروهبان رینگ سرش را تکان داد که یعنی خفه، تبهکار چنان آه بلندی کشید که می توانست بادبان یک کشتی را پرباد کند، چنان با شک و تردید به سمت صندلی رفت که انگار بر عرشه کشتی طوفان زده قدم بر می دارد. صدای جیغ همچنان از داخل یخچال می رینگ رینک به تبهکار گفت، یه دقیق کن، اصله هم را داری؟ کار توری سر جاش میخوب شده بود که انگار یخ زده به یخ چار خیره شده بود که صدای جیغ از آنجا می آمد انگار که دارد خواب می بیند سرش را آهسته به نشانه تایید تکان داد یعنی که اسلحه دارد گروه با رینگ پدرانه اما با صدای پدری که کسب و کارش ساختن بیل دو شاخه در جهنم است گفت پس پسر خوبی نیستی شرط میبندم که جواز حمل هم نداری شرور مسلح با سر تایید کرد که جواز ندارد. بعد با زحمت بسیار به حرف آمد و گفت اون چرا اون توه؟ میخوای بهش ملحق شی مردک متقلب داد کشید که نه به زرس قاطع اعلام کرد که دلش نمیخواد برود تو یخچال پیش رفیقش. پس پسر خوبی باش تا نفرستمت پیش مردها. طبقار سرتکان داد و قاطعانه اعلام کرد که میخواهد پسر خوبی باشد. اصلا را آروم از جیب درار و به سمت هیچ کس نگیر. هفتی را گاهی وقتا ماششون تصادفی در میره و ما خوش نداریم همچین اتفاقی بیفته چون ممکنه یکی آسیب ببینه و یکی دیگه سماه تحتیلیش را تو یخچال با مرده حسار کنه. مردک تپانچه کالیبر 45 را خیلی آرام از جیب درار. آنقدر آهسته که آدم را یاد سرریز کردن شیره افرای خیلی سرد از شیشه مربا میانداخت. گروهبان همانطور با فنجان قهوه در دست سر جاش نشسته بود. موجود خیلی خون سردی بود و اگر بابل مقلوبم نکرده بود حالا من هم قطارش بودم. گروهبان گفت: «مسله رو بیار اینجا مرددکاصل رو پیش گروهبان آورد. طوری تپانچه را هم میکرد که انگار دخترک پیشاهنگی با یک جعبه کله تو دستش است اصلاحه را بده به من. اسلحه را دست گروه بانداد رینک گفت. حالا برای ما تا به چسبم به اون سندلی و خفه. نمیخوام یک کلم ازت در بیاد. میخوام مثل مجسمه بشینی اونجا. حالی شد؟ بله. از طرز بله گفتنش پیدا بود که واقعا میخواهد برود بنشیند و نقش یک مجسمه را بازی کند. طبع به حرفش عمل کرد و رفت و روی صندلی که کنار رفیق خابیدش بود نشست دقیقا همان کاری را کرد که گروهبان گفته بود. مجسمه یک ارتکاب جرم نافرجام شد. مرمروار به یخچال نشست. به یخچال زده بود و به صدای جیخ ها گوش میداد دد. جیخ ها همینطور تند تند و بریده بریده بیرون می گروهبان رینک گفت همونطور که معمور مخفیا میگن جنایت آخر و نداره. رینک گفت: گمونم این علاقه دیگه الان آماده آواز خوندنه. <میخوام> تا آخر خطش برم. پزشکی قانونی که نباید اینطور به هم ریخته باشه. اهالی سانفرانسیسکو نمیتونن اجازه بدن جسداشون دست به ببرن اینطوری اسم شهرشون بین ها بد در میره. <متصف> <متحد> همینطور صدای جیغ از تو یخچال میآمد گروهبان گفت: اپرایی هست که دلتون بخواد بشنوین؟ من گفتم: زن گم شده پاچوبی گفت پروانه خانوم رینگ گفت به زودی میشنویم ترقه ترکانی ادگار المپویی هیچ کلمه ای نمی توانست حالت چهره آن تبکار را وقتی که گروهبان رینک از یخچال درش میآورد توصیف کند. گروهبان اول یک کمی کفی را بیرون کشید. فقط های مردک دیده می‌شد. انگار که ادگار آلمپو پای هاش ترقه گانده. گروهبان کفی را خیلی آهسته بیرون می‌کشید و تبکاره در حالی که با های پریشانش بی اختیار به ماستر زده بود، همچنان در حال جیغ کشیدن بود. آه! آه! آه! رینگ گفت: خفه شو. آه! ت벌کار کلاً خفه شد، انگار که یک کوه اورست نامرئی روی دهنش افتاده باشد. حالت چشمهاش از آن حراس پوگونه برگشت و در بحر باورناپذیر سکوت فرو فروش حالتش طوری بود که انگار از پاپ درخواست معجزه دارد رینگ پرسید یه خورده بیشتر به دنیای زندهها نزدیکشی؟ تبهکار با سر تأیید کرد و اشک از چشمهاش سرازیر شد گروهبان کفی را باز هم بیشتر بیرون کشید تا اینکه صورت تبهکار تماما پیدا شد کفی را خیلی آهسته بیرون کشید بعد دست نگه داشت و همانجا ایستاد و به آن تبهکار فلک زده خیره شد لبخند خیرخواهانه ای روی صورت رینگ نشست. با ملایمت دستی به گونه تبهکار وحشت زده کشید. مادر رینگ. حاضری آواز بخونی؟ طبخ سرش را به نشانه رضایت تکان داد. من همش میخوام. سیر تا پیاز ماجرا رو. دفعی بعد ممکنه درت نیارم. بعدشم من هیچ عبایی ندارم. موش بی ارزشی مثل تو رو نفله کنم. گرفته چی شد؟ مادر رینگ توکار دوباره با سر تایید کرد. خب حالا همه چیزا بگو. توکار مجنونانه و عصبی لباس کرد و گفت من نمیدونم اون همه آبجو رو کجاش جا میداد. ده تا آبجو بالا انداخت و توله نرفت. همینطور یه بند آبجو میخورد خورد و تولتم نمی رفت. خیلی لاغر مردنی بود. هيكلش هی هیچ جای واسه اون همه آبجو نداشت ولی اون همینطور یه بند آبجو میخورد. خورد. لاقل آبجو بالا انداخت هیچ جایی واسه اون آبچه نداشت جیخ کشید هیچ جایی گروپن گفت اون کی بود او زنی که ما را اجیر کرد تا اون جسد رو بدستیم یفا آبچه خور بود خدای من تا به آن همچی چیزی ندیده بودم آبجو به آری ناپدید میشد رینگ رینک گفت اون زن کی بود به ما نگفت فقط اون جسد رو میخواست. سوال معالی رد و بدن نشد پول خوبی تو کار بود ما نمیدونستیم کار به این جا میکشه یه خانوم مایهدار بود بابام به گفته بود که هیچ وقت طرف خانومهای مایهدار نرم نگام کنین الان توی یه سرد کار پارست بردم بوش رو اس نیکنم او رو بردن عجب گایی خوردم به حرفش گوش ندادم رینک گفت تو باید به حرف بابات گوش میدادی. در همین حین آن تبعکاری که روی زمین دراز به دراز افتاده بود، داشت به هوش می آمد. گروهبان به مجسمه تبعکاری که روی صندلی کنار او نشسته بود، نگاهی کرد. به تبعکار گفت: دوست داره به هوش میاد. یه لگد از طرف من بزن تو سرش. هنوز یه خورده دیگه باید استراحت کنه. تبعکار روی صندلی بی اینکه از جا بلند شود، چون گفته نشده بود که از جا بلند شود، لگدی به سر آن تبعکار دیگر زد و طرف دوباره به خواب رفت. رینک گفت. ممنون. و بعد دوباره سینجیم کردن طبع دستبسته دست بسته روی کفی رو از سر گرفت. هیچی به ذهنت نمیرسه که اون جسد و باسته چی میخواست. نه. اون تمام مدت فقط آبجو می میخورد. پولش خوب بود. من نمیدونستم کار به اینجا میکشه. ما فقط میخواستیم اون جسد و بدستیم. رینک گفت. تنها بود. نه. یه مرد هم محافظش بود که قیافش به راننده ها میخورد و گردن کلوفتی داشت عین شیر آتش نشونی ما وقتیو اینجا با یه جسد داشت ولی عوضی بود واسه همین برگشتیم که جسد اصلی رو ببریم ولی جسده نبود ما واقعا نمیخواستیم آسیبی به اون رفیق یپاتون بزنیم فقط میخواستیم یه خورده با خشونت باش رفتار کنیم تا بتونیم جسد اصلی رو گیر بیاریم رینک گفت دنبال کدوم جسد میگشته این همون فاحشه که امروز سرش رو سیناپ کردن شما کشتینش؟ تبه گفت نه نه آ خدای من نه اصلا از این سوال خوشش نیامده بود اسم خدا رو به زبون نیارد دودول وگرنه دوباره برد میگردونم تو یخچال گروپان یک کاتولیک ایرلندی بود که هر یک شنبه هم کلیسا میرفت تبه کار گفت بازرت میخوام معذرت میخوام برو بر نگردون اون تو رینک گفت اینطوری بهتر شد شما چند تا جسد از اینجا بردین بیرون؟ فقط یکی همون جسد عوضی یه خانومی بود عوض او فاهشه برداشته بودیمش واسه همی برگشتیم تا اصلیه رو برداریم ولی سر جاش نبود ما نمیخواستیم به دوستتون صدبه ای بزاریم. این همه این چیزی بود که من میدونم قسم میخورم رینک گفت مطمئنی که چیزی رو از من پنهون نکردی؟ طبع گفت آره قسم میخورم دروغ نمیکم شما فقط یه جسد رو برداشتین آره؟ آره جسد یه قانون بود جسد عوضی گروه گفت دوتا جسد گم شده جسد اون فاحشه رو کی برده؟ شما فکر میکنید اگه ما که پول گرفتیم جسد اون فاحشه رو بدستیم اون رو دستیده بودیم اینقدر احمقیم که دوباره برگردیم اینجا دنبال جسدی که قبلا بالا کردیم؟ تباکر با این حرف مرتکب اشتباه شد. رینج از نوع نگاه او خوشش نیامد. کفی را بیس سانتی به داخل سرد داد داد و این واکنش قابل انتظاری در پیداشت. مردک بیس ترابا دوباره بنای گذشت آ نه نه نه نه من دارم حقیقت رو میگم. ما فقط یه جسد رو دست دیدیم. برش میگردونی بهتون. گروبان گفت. جالبه اینگار جسد دزدی تو سان فرانسیسکو اپیدمی شده. پاچوبی هم خودش را آش کرد و گفت: تو مطمئن یارو راست میگه که دزدیدن اون جسد دیگه کار اونا نیست. آخه کی دیگه ممکنه درست همین امشب برای دزدیدن یه جسد اومده باشه اینجا؟ من از سال 1925 اینجا مشغولم و اولین باری که یکی میاد جسد بدوسته و احتمال اینکه دو نفر دو تا جسد مختلف و تو یه شب بدوستان یک در میلیونه. اون هر زاده رو بکن اون تو و حقیقت تا از زیر زبونش بکش بیرون. پاسخ <وزد> طبع به آن اظهار نظر این بود. رینک گفت نه. اون داره حقیقت رو میگه. من حرف راستو خوب تشخیص میدم. این تخم حروم دروغ نمیگه. نگاش کن. تو فکر میکنی تو این تاپاله ی لرزون جایی واسه دروغ مونده؟ نه. فادارش کردم برای اولین بار تو زندگیش حقیقت رو بگه پاچوبی که وانمود میکرد عصبانی شده گفت پس من دیگه نمیدونم چه اتفاقی تو این خراب شده افتاده شاید یک کل خره دیگه هم تو سانفرانسیسکو هست همین چیزی که من میدونم اینه که دوتا جسد کم دارم و از تو میخوام تو گزارشت بنویسی که من خواهان استرداد اونام رینک گفت باشه پاچوبی آروم باش این دو نفر جسد و متلقه رو بلند کردند. پس نقدن یکی از جسدات رو بهت برگردوندم پاشوبی گفت حق با توه پس گرفتن یکی از اونها بهتر از اینه که هر دوشونو نداشته باشم من باید مرده تو دست و بادم باشه تا بتونم سر کنم. گروهبان گفت میدونم میدونم و به سمت میز رفت تا برای خودش باز هم قهوه بریزد کار دراز کشیده روی کفی را که نصف صورتش توی نور پیدا بود به حال خود رها کرد طبع کار اصلا لب به شکایت باز نمی کرد. نمی خواست فرصت به دست آمده را از دست بدهد. دوباره تک و تنها توی تاریکی هم نشین ها شود. به فضع موجود راضی بود. گروه رینگ رینگ قهوه سر کشید. به پاچوبی گفت دلیلی نداره که یکی بخواد تا جسد کم بیاری. داره؟ ببینم. این دورو هیچ چیز مشکوکی توجه تا جلب نکرد. پاچوبی گفت. نه بابا، اینجا پر از جسد و من میخوام اون فاهشه یه مرده برگرده سر جاش گروه رینک گفت باشه، باشه ببینم چی کار میتونم بکنم همینطوری رو کرد به من گفت تو چیزی راجع به این ماجرا میدونی؟ گفتم من از کدوم گوری باید چیزی راجع به این ماجرا بدونم من یه سری زدم یه سلامی به دوست قدیمی پاچوبی بکنم و یه فنجو قهوه باش بخورم تبهکاری که روی زمین افتاده بود دوباره داشت به هوش می آمد. مثل یک پروانه ماست بالبال می زد رینگ به مجسمه تبهکار کنارش گفت لگدت اونقدر محکم نبوده مجسمه مطیعانه لگد خیلی محکمی به سر طرف زد تبهکار ای دوباره بیهوش گروهبان رینگ گفت ممنون